بهجاب به ج ا ب خود ب نازه که به تو خدا اطا کرد کرمی عظیم خوهر به تو ذات کبریا کرد به تو خ ه ر مسلمان دو ص د افتخار د ا د که تو را عزیز و لایه به خدا ق س م خدا کرد به خدا غسم خدا کرد کر گل پاک آفرینش تو میان باغ خوش باش که حسار حکمتش بای جفاز تو جدا کرد شهو جا است ت ه ف ی د ا د ته خدای هستی سپری گ ز ی د ر ا و ج تو زفت نهاکم س د فی امین که پ و ش ا ن وجود بس نجیبا م ش ک که چون شکستار نتوان دگر بنا کرد دلو دیده ا ت و به چا و ببین که لشکر کاف شرف و حیای زیبند چگونه کیمیا کر که چگونه کیمیا کر